رخداد نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسانشناسی بنابا خدا برز سلام عدو احترام و فروتنی خدمت شنوندگان گرامی از صدای امید در خدمت شما هستیم از سایت اینترنتی صدای امید دات کام قسمت سی برنامه برابری در خدمت شما هستیم به نوعی این آخرین قسمت برنامه برابری هستش نه به معنای اینکه ما به طور کامل مباحثمون را اینجا تموم بیکنیم بلکه یک سری جدید و سری دیگری با یک شکل دیگری این برنامه ادامه خواهد داشت این 36 قسمت 15 دقیقه‌ای که ما به همراه جناب آقای ایران مهرگرامی در خدمت شما شناندگان گرامی بودیم ای است برون مباحث بنیادی که ما در باری تاریخ مبحث تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم داشت بازندیشی تاریخ و حرفهای جدیدی که شاید های زیادی برانگیزه خیلی عبای هم از این نداریم این مباحث جدید را مطرح بکنیم چون این بابایست باید مطرح بشه و یک روزی باید این تابوی تاریخ نویسی جدید نگاهی که سنتی نگاه سنتی صد سال اخیر به تاریخ بوده این تابو باید یک روزی شکسته بشه و پجوهش های جدید و بازنویسی جدید تاریخ ایران شروع بشه شاید بخوایم در حد خودمون یه نقش کوچیکی در این روند بازی بکنیم در قسمت سی و پنجل جناب آقای ایران بهرگرامی در مورد بحث شاهنامه مدرکش چون ما در برنامه جدید بسیار بهش ارجاع خواهیم داد در مورد اینکه آیا چنین کتابی کتاب شاهنامه فردوسی به عنوان سند و هویت و شناسنامی ما ایرانیان میتونه به عنوان یک منبع تاریخی باشه یه بحث کوچیکی باقی بود شد تو این برنامه دراز 2 یا 3 دقیقه جناب آقای ایران مهر یه جمع بندی بکنن تا اینکه با به بحث دیگه بپریم و و توضیح در مورد سری جدید برنامه بله خواهش می‌کنم چون توضیحات که آقای دکتر مربی در پایان این بحث میخوام بدن خیلی خیلی مهمه من اینو خیلی کوتاه میبندم فقط چون ما هممان کردیم یک بخشی هم اگر برسییم من آقای مویبی درباره استقرار در زاگروس میگیم اگرم نرسیدیم حالا طوری نیست. نه تو برنامه چیز ادامه بدیم اگرم شد که خب میگیم خدمت در حد چند دقیه من فقط در حد دو دقیه اینو می بعد دیگه میرییم ببینیم درباره استقرار در زاگروس صحبت می یا نه و بعدش من فقط اینجا بگم دکتر آادی در پایان این بخشی که به عنوان مقاله منتشر کرد سال 18 میگن شاهنامه پژوه نمیتواند چند داستان مشهور شاهنامه را بخواند و سپس آغاز به داوری درباره شاهنامه و فردوسی نماید بدون خواندن همه شاهنامه و بدون دانستن مو به موی تاریخ و فرهنگ کوهن ایران و بدون آگاهی از دستکم دو زبان کوهن پهلوی و اوستایی و دسترسی به این متون شاهنامه پژوهی امکان پذیر نیست هزرات نیان بشینن تو رسانه ها صدا سیما اینور ور اون ور صدا رو بنزن تو گیلوشون شاهنامه شاه ناماز یا نامه شاهانه آدم واقعا خجالت میکشه اینا هنوز تو الف و بموندن به قول دکتر کزادی نامه سرنوشت ایران دستمونه بعد رفتیم به قول استاد جنیدی میگه که تاریخ جهان و از دید غربیان دیدن ره رستگاری نیست پیگیری تاریخ ایران از دیدگاه غربیان مایه سرفکندگی و خجالت زدگی است. بله دیگه اصلا ای از همه بدتره. من فقط به دوستانمون چون ما داشتم میگفتیم که این برنامه رو داریم تدارک می‌بینیم که جوونامون از این حالت آریا زدگی بیام بیرون و خیلی به آریایی بودنشون ننادید یعنی بگم حال به چی بنازیم بگیم آریایی مثلا بقل. دیدم که دو قرب زدگی اینا شدن. من فقط بگم که خیلی چیزا تو تاریخ ما هست که بتویم بهش بنازیم. من خیلی کوتاه از زبان شاهنامه چند بیت میخونم و اینو میبندم و در خدمت های دکتر موی هستم. یه جا هست یکی از یعنی من از نظر من زیباترین عاشقانی جهان داستان زال و روداب است. بله من مطمئنم 99 درصد جوانان ما ایران اصلا نشدیدن. نشدیدن راحت. اینو برم بخونن چه نثرش شد چه نظمش بود زیباترین عاشقانی جهان یعنی اصلا آدم حیرت میکنه. چقدر پاکی چه عشق پاک چه عشق دنباله داری بر حال سپاس به ازدواج ختم میشه. در زمان منوچه این اتفاق میفته یعنی مرزهای ایران شر تشکیل شده بوده زال پدر رستمه پسر سامه سامه, سامه نریمانه با رودابه ازدواج میکنه رودابه باردار شده رستم چون سنگین بوده نمیتونست به زادنش سخ بوده مادرش سیندخ میپرسه که دخترم چرا اینجوری شدی رنگت زرد شده فقط رودابه میگه تو گویی به سنگست آکنده پوست وگر آهن نک نیز ان درست میگه تو اگه بگی آهنم هست میگن بلوواانه الان توش که منه این قنگینه بعد حالا ناشار بودن این ما زا طبیعی نمی این چیزی که میگن زاریان حالا ببینیم سزارین ببینیم کی اولین انجام داده دیگه داستان ما رو زمان منو چهره مال هفت هزار سال پیش بعد سیمرغ میاد پرشاتیش میزنه زال سیمرغ میاد یونه که سیمار نماد پزشکیه. نماد پزشکی. ما این نامو, ای نامو در نام سینا هم میبینیم. دقیقا. علی سینا. علی سینا در اینجا. سینا. سینا سینه مرقه نام عویستایشه که نام سیمار. این سینهنباز در سینوهای پزشکی ما اینو میبینیم میبینیم. که در نماد در... پزشکیه. یعنی مرغی نبوده گنده پرواز کنه بیاد. این نماد استرایی بله. پزشکی. حالا میاد این دستورات رو میده. ببینید این دستور پزشکی داره گه. میگه بیا حالا بعد ناراحت میشه میگه چکار کنیم بچه رو؟ میگه نگران نباش بیاور یکی خنجر آبگون تیغ جرایی باید خیلی تیز باشه دیگه یکی مرد بینادل پرفوسون یعنی یک آدمی که وارد به تمام این فنون باشه که ما میگیم انجام بده نخستین به می ماه را مست کن حالا ببینیم میگن که زن ستیزی در شاهنامه نمیگه رودابرم میگه ماه را ماه به می اون مییم. حالا بعد میگیم که این تو می داروهای هوشبری میریختن این نامش میه به این سبب به این میدادن که این از هوش بره زد دل را پس کن بعد میگه حالا اون ادامه میده اون مرد بینا دل پروفسون این کارا رو میکنه بکافت توهیگاه سرو سهی باز ببینیم با نام سرو سهی هست این اسم کافیدن کاویدن یعنی شکافتن, شکافتن. توهیگاه یعنی این پهلوشو نباشد مرور از درد آگهی. چون بیوش شده دیگه و بچه شیر بیرون کشد یعنی میگه بچه درستو میتونه اونجا بکشه بیرون همه پهلوی ماه در خون کشد میگه این پهلوش که این ماه رو این روداوره رو چاک میدیم خونی میشه و زان پس بدوز آن کجا کرد چاک درخیه بزن زدل دور کن ترسو دیما با... ترس. رو نترس درخیه رو به این پوست بزن من بهت میگم چیکار کنی بعد گیاهی که گویامت با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خشک یک چیز دارویی میده بسای بسایو برالای برخستگیش میگه اینا رو بساب به مال آلوده آلو کن او خستگی یعنی روز زخمش ببینی همان روز پیوستگیش میگه این فوری این جوش دادن این جای دوخته شده رو تاثیر تو این بدون مال از آن پس یکی پر من خجسته بود سایه فر من منظورشه که من پزشکی هم دستورات که میگم برای دوران نقاهت این انجام بده بعد مادره سیندخت مادر رودابه فرو ریخت از سین سیندخت خون که کودک ز پهلو کیاید برون بعد دیگه این از اتاق میبرن بیرون و این اعمال انجام میدن و رستن زاده میشه ببین آ دکتر این همه جا داریم که سر بلند باشیم آه. بعد چسبیدیم به چه چیزایی واقعا اوز میخواهم. میگی چون بله. بفرمایید. ششماز... میگیم. نه, نه خواست خواست خواست خواست خواست ات... اتفاقا من خیلی اصرار دارم که یه چند دقیقه اتفاقا در واقع یه درداشی بشیم بله, بله خواهش بله میکنم. اتفاقی که در واقع بعد از ورود این گروه های جمعیتی به خاورمیانه رخ میده حالا برگشتیم باز به کوچ از شرق. بله ظاهرا اون طوری که در واقع نشون داده میشه قسمت بین رشتگوه زاگروس و بین نهرین به عنوان اولین سکونتگاه ها تو فلات ایران میشه شداختش نشانه ها ها ببینم آیا نشانه از این خیلی کبله حد دو سه دقیقه دو سه دقیقه اگه دارین نشانه این استقرار تو زاگروس به چه میزان هست و تخمین چند سال در واقع زده خواهد. شده؟ آی دکتر نقشه‌های ژنتیکی هم نشون میدن که بلد. این کوش از شرق آفریقا نخستین مبداش فلات ایران. بار. حالا ما میگیم آسیای غربی یا قلمرو میانی که اونا که با نام ایران کهیر میزنه بدنشون نزنه. به هر میان اینجا دیگه. بله. حالا نشانه خیلی خلاصه در حد چند دیگه من فقط عرض کنم که ببینیم آیا نشانه هست یا نه. شواهد نشون میده که جنوب غربی ایران از اواخر دوره پلی استوسن، یعنی دوره چهارم زمان شناسی دارره اقلیمی سازگاری بوده. بله. پس از این دوره آشولین که حدود 80 هزار سال قبل تا۱ هزار سال قبل رو در بر میگیره. این شرایط مساعد همچنان ادامه داشته. شما در لورستان که همون بخش کواه زاگروس شما نگاه کنید که به قارهای لورستان معروفه، در های شمال شهر کوه حدود بله. صد هزار تا چهل هزار سال پیش ما دو قار داریم به نام همیان یک و همیان دو که این نشانه ها درش دیده شده علاوه بر ابزار و شواهد سکونت نقاشی های از ادوار بعد از اون بر بدنه قار شناسایی و مطالعه شده <تصفيق> تا تا گروه‌های انسانی که تا 17 تا 15 هزار سال پیش زندگی می‌کردن که این خیلی نقطه زمانی مهمیه ما بعداً بهش قایم پرداخت این نشان ها آقای دکتر همچنان ادامه داره. ادامه داره این از نخستین استقرار این نشانه ها حالا بعد دیگه اونجا میرسیم دیگه نشانه نشون میده که این نقاشی های متأخر مربوط به دوره نوسنگی 16 هزار سال پیش 5 تا قار توی نزدیک خرم‌آباد هست آقای دکتر که این استقراراش خیلی کهن مربوط به همون دوره میشه در غار کنجی ابزاری به دست آمده که از اون به قدیمی ترین مرحله از دوره شکار و گردآوری خوراک یعنی دوره مستریان تعلق داره پناهگاه سنگی گرارجنه اینجا ابزار ازش به دست آمده از این پناهگاه دو دوره متوالی مستریان و برادوستین تعلق داره این ادامه این سکونت خیلی مهمه بین دو دوره این سکونت ادامه داشته بعد قار قمریه این قار نیست در دوره مسترین سکنت بشر درش اثبات شده در لورستان یکی قار یافته متعلق به دوره برادستین حدود سی هزار سال پیش یعنی پیش از یه دوم. دوم باز میبینیم که شواد استقرار اینجا کاملا مشهوده وجود ابزارهای از دو دوره فرهنگی از ارزنده ترین شاخصهای شناسایی روند تکاملی ابزارسازی در دو مرحله زندگی انسان در این قارهاست یعنی میدونید دکتر سکونت تو دفی نبوده ادامه دار, ادامه دار بوده, بوده نست در در... نس اونجا زندگی میکردن آخرین پناکایی که ما اینجا نام ببینیم پناکای سنگی پاسنگره اصلا مقارهای لورستان مطالعه ابزار پناگاه پاسنگر به لحاظ شناخت تحول فناوری در دو بره از تاریخ زندگی بشر در زاگرس بسیار مهم و ارزشمنده. علاوه این مطالعات نشون میده که سازندگان این میکرولیت ها در این زمان یک نوع فناوری تازه را با مهارت و استادی تمام آغاز کردند که جالبه حالا این به کجا ختم میشه که بعدها به تیغه های کوچک و بسیار ماهرانه در دوره تولید غذا منجر میشه این ابزار پیشرفت فناوریش که بعد به برش و گوشت و اونجاها میرسیم که حالا بعداً توضیح میدیم این دوره دوره به حساب زارزیان معروفه که پایان دوره شکار و گردآوری که احتمالا اون این دوره آغاز دوره ذخیره مواد غذایی مخصوصا دانه های خوراکی بوده که بعد از اینه که های دکتر به مرحله تکاملی تولید غذا میرسیم یعنی هنوز دانه های وحشی رو فقط جمع میکنیم در این دوره و میاریم تو قارها زخیره, زخیره میکنیم. میکنیم بعد مردمان زاگروس همچنان این فناوری عجیب دوران باستانی رو تا حدود 13000 هزار دوازه هزار سال پیش تو قارها داشتن. همچنان بعد که کم کم میان تو دشت و اینا که های دکتر دیگه اینا شواهد استقراریه که خوشبختانه هست. بله. یعنی اگر هم نبود اون رد و پای ژنتیکی مرز کردم اینو نشون میداد. می اما اینا هم هستو اینا هستش بله. تکمیل میکنه هست. که انسانها در بله. اونجا استقرار بگیرن. خیلی متشکرم چند دقیقه بیشتر به پایان این برنامه نمونده من یه توضیح بدم در مورد پایان این برنامه. خب این برنامه یه مقدمه‌ای بود برای بحث تکامل، برای به وجود اومدن انسانها و همچنین در حدود ده. 12 قسمتا abelian که به نقد نظریه داروین بوده و به اضافه نظریه هایی که در نقد اون داروین داشتیم صدای امید یه برنامه‌ای رو تدارک دیده در ادامه این برنامه که در واقع متنی من این حاشیه و مقدمش بوده و متن تاریخ که ما تاریخی رو به صورت کاملاً مبسود میخوایم بررسی بکنیم اون برنامه مثل این نخواهد بود این برنامه خب شامل جایی در جریان که یروب بوده، 15 دقیقه بوده و خیلی زود تموم می شده در اون برنامه حدود سه لا چهار نفر از کارشناسان تاریخ از عمد زبانشناسی تاریخ باستان در خدمتشون خواهیم بود مباحث تاریخی رو به طور کامل ریز به ریز در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود تو این برنامه به شواهد استقرار انسانهای امروزی اجداد ما در فلات ایران پرداختیم و ما دقیقا از همین نقطه تاریخی در برنامه های آینده که حالا اسم برنامه ایران وچ هست و دلیل اصلا انتخاب این نام هم در قسمت اول اون برنامه ذکر خواهیم کرد اون برنامه باز هم یک سری طرح ها و طرح مسئله هایی خواهیم داشت به طور کامل ما این بحث رو بست خواهیم داد که اصلا تاریخ ایران رو باید از نو به چه دلیلی ما می نقد وارد بکنیم به این تاریخی که الان تو دانشگاه ها و مدارس تدریس میشه چه نقصی داره این تاریخ چه نقایص تاریخ چه معایبی داره و منابع جدیدی که برای بازاندیشی و بازنویسی در تاریخ ایران هستش چه چیزی در اختیار ما هست ما از کجا می خوایم شروع بکنیم از پیشا کیو از دوریان و اصلا کیومرز کی بوده شخصیت هایی که ما جن اعلانمه گرامی یا این بحث شاهنامه با ادامه خواهیم داد که هست اصلا میشه به این استناد کرد یا نکرد چون بحث به صورت خیلی خلاصه مطرش ها در قسمت 35 به این به طور کامل خواهیم پرداخت لذا شما شناگان گرامی رو نوید میدیم به این برنامه اه... که میشه مناقش زیادی به وجود بیاره صحبت های بسیار زیادی به دنبالش خواهد داشت و ما میدونیم و از همین الان آن هم از پژوهشگران و کسانی که منتقد این برنامه خواهند بود میخواهیم که نقد‌های های خودشون رو مثل علمی مطرح کنند و ما و دوستانمون آماده هستیم که به نقد‌های های اونها پاسخ بدیم و امیدواریم که بحث ها علمی صورت بگیره و از کسانی که یه نگاه و نگاه هیستریک به تاریخ دارن خواهش میکنم از این حالت گارد بیرون بیان و اگه در مباحث برنامه های آینده یک مسائلی مطرح شد که خیلی در واقع بلیان و منشأ فکری اونها رو زیر سوال بود خیلی زود عصبانی نشند نقد های علمیشون رو مطرح بکنن و یک گفتگویی صورت بگیره و از داخل این گفتگو متن جدید و تا بازندیشی و بازنویسی جدید تاریخ ایران به وجود بیاد شما شنوندگان گرامی رو تا شروع اون برنامه به خداوند متعال می و امیدواریم که شاد و سلامت باشید. از این, این سی این 36 قسمت ما رو تحمل کردید بسیار سپاس گذاریم خدا نکردیم